او شب رنگ سیوه شب یلدا شب یلدای امسال دوره همین آخرین شب پاییزی سال 94 ها. با فرشید منافی از رادیو فرد دوشنبه سی آذر شب یلدا با رادیو فردا 9 شب تا نیمه شب آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر علا کبادارته چون بلدی بخندی و چشم دل ببازید با ایش دل ببندید موسیقی ازبا که دلب سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نشوا که قلب سبز پیشیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. سلام علیکم حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی اینجا رادیو پس فردای شماری 951 امروز یک شنبه 291394 با شماییم خوب خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ فردا یلداستا؟ خریداتون رو کردین؟ هندونم خریدین؟ چند؟ راسته میگن کیلوی 4500 میفروشن هندون رو؟ اگه هنوز هندونه یلداتون رو نخریدین از من میشنفین تا شب نخرین وایسین تا فردا شب وایستین ساعت 8-8 تونیم که شد بری یه سرگوشی ها بدین توی می ها خلاصه هرچی می‌خازه بفروشه دیگه یارو تو ای... این ساعت فروخته دیگه ها تا ساعت هشت 8 به بعد دیگه حراج می‌کنه ها رو میدونه این نفروشه میمونه رو دستش وسط زمستونم کی هندونه می‌خوره آخر اینا چگردای خاص شب یلدا است بله ما اینیم خلاصه دیگه همه کاراتونو بکنین دیگه فردا ساعت 9 شب خونه باشین که یه ویژه برنامه همچی پروپیمون داریم آ. نکنه نیاین و نباشین منتظر صدااتون هم هستیم برو بریم خب دیگه این روزا تا صحبت از آب و هوا میشه کسی یاد را نمیاد نمیدونم حد اکثر و حد اقل و گرما و سرمای این حرفو نمیفته همه یاد آلودگی هوا میفتن متاسفانه بچسام معلقی که الان تو شهرهای بزرگ تو هوا در حال رژه رفتنن تا به محض برخورد با یک نفس عمیق برن تو حلق ملت و هزار یه دردسر درست کنن اینه که تو رو خدا مواظب باشین مواظب خودتون باشین حالا جالب اینکه تهران و کرج امروز سرعت باد نسبتا بالایی هم داشتن ولی ظاهرا انقدر این آلودگی هواشون میزانش زیاد بوده که فردا هم مدرسشون رو تعطیل کردن قبلا همش میگفتیم تو رو خدا خودتون رو مثلا بپوشونید تو سرما سرما نخورید الان همش باید بگیم تو رو خدا حداقل مقدور بیرون نرین یا اگه میبینین مثلا نفس نکشین یعنی دم در که دارین بیرون نفسونو رو حبس کنین بعد که برمیگردین خونه دوبار نفس ول بدین بیرون خیلی هم دبش کاربردی و شدنیه امتحان کنین دیگرم سلام سلام علی... این داستان غزیه چیه که تهران با خطور آدهگی هوا یه روز ترتیله کرده از رو دو روز ترتیل کردن دلیل شما میشه بگیم خب دیگه پس میزنه آلودگی ها رو حل میده به سمت اطراف تهران اتمالا با تهران زیاد بوده رفته سمت کرد من چه میدونم عرفاییت سوال های میکنیم ها. اما خانم آقایون دختر خانم آقا پسرها ما اینجا نیستیم که همش بهتون خبر بد, بد, بد بدیم که خبر خوبم میدیم بله الان این خبر خوش و شادیاور رو از زبون گوینده یکی از بخش‌های خبری تلویزیون گوش کنیم با یک تلفن حساب محریه تان دستتان میآید. مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه امکانی فراهم کرده که شهروندان می توانند با تماس با شماره تلفن های 129 و 096-99 از میزان ریالی محریه خود به نرخ روز مطلع شوند. بله خب خدا رو شو دیگه یکی از بزرگترین مشکلات مملکت حل شود. یعنی شما تصور کنید یه گروهی توی قوه قضاییه که ماشاءالله در دیوارش مشکل و نقص و بی قانونی کلی بحث کردن، کلی جلسه گذاشتن جلس ها کلی میوه پوست کردندن کلی شییننی چای خوردن تا چی تا این مشکل بزرگ و به ظاهر حل نشدننی مردم رو حل کنن. مشکل چی بود حالا اینکه شما نمیتونستید یعنی سوادش رو نداشتید که بری خودتون یه مثلا ضرب و تقسیم می مبلغ بلغ رو به دست بیاری اینی که عزیزان خب جمع شدن دوره همان مشک رو به خوبی حل کردن دیگه تازه صدا وسیمان به این خوبتری پوشش داده آخه یعنی شما دیگه چی میخواد؟ ای مردم از این مسئولی ناخه دیگه چیکارکنن اینا برای شما شما فقط مونده جون بخواید. کیه که بده؟ بابا چه خبره؟ دم به ساعت، سه ساعت برنامه و فهمیدیم دیگه. حالا یه روز سه ساعت برنامه داری. کشتی خودتو، کشتی ما رو ولکن کن بابا بفهمیدین. ده ساعت میاد، یه پیام میاد. سه ساعت برنامه دارم. میخواییم برنامه نریم آقا اصلا اگه اینجوریه خب نمید اصلا فردا برنامه نداشته باشیم به عنوان شب یلدا ما هم بریم دنبال عشق و حال و دنبال شب یلا و یلدلی تللی و اینا اینقدر خوشمون میاد این کارا بکنیم به خدا دوست داریم ما چرا که نه اما همونطور که میدونین این هفته موضوع برنامه ما شب و امشب میخوایم بریم سراغ شبه های سرنوشت ساز و حساس و شب‌هایی که گاه مسیر زندگی ما رو تغییر میدن و گاهی هم البته هیچ تغییر نمیدن ولی انقدر استرس بهمون میدن بعضی شب‌ها تا آخر عمر خاطراتش دلو چشمون رجم میرن حالا در موردشون که شروع کردیم برنامه رو بالا به به صحبت کردن و اینا متوجه میشین که از چه شبهایی دارم حرف میزنم البته اتمالا خودتون حتایی زده باشین من همینجا یک سلام و مخصوص عرض میکنم خدمت اونهایی که توی زندگیشون چون این شبهایی رو تجربه کردن و الان دارن سری به علامت تأسف و ناراحتی از یادآوری خاطرات اون شب‌ها تکون میدن سامی هم الان سرشو تکون میدن تکون دادن الان نمیدونم چرا تکون دادن سامی جان یه چیزی بذار ملت باشن به جای آره بابا فرد شب نسلامتی الداستا تکون بده هر با تو شب عشق با من هر شب با تو به با من وقتی عشق یکی رو تو دلت داری مثل عشق من یه چشمات هیچ کس را نمیبینه مجنونه، مجنونه دنی معنی عشق واقعینه امروز میریم سراغ شبهای حساس از این شب ملولم و فردایم آرزوز بیامی گیه شماقه 951 بیامی گیه 951 بدانید و آگاه باشید که شب‌های حساس برای این به وجود آمدند که شما در اینها از فرط استرس و سنگینی بار مسئولیت یک جوری له و شوید که دیگر نتوانید سر بلند کنید پس بر شماست که خودتان را با گوش دادن به این برنامه جوری برای مقابله با این شبها آماده کنید که زیربار هیچ چیزی له نشوید هرچند که در نهایت همگان در شب‌های حساس زندگی از فرط استرس منفجر شبندگانیم. مزاو قبل از به صوبح رسیدن شبهای حساس زندگیشان خودشان هیزده تا سکت زنندگان رادیو پس ف دا دا دادددد این هفته از شما پرسیدیم میونتون با شب چجوریاست یعنی گفتیم بهمون به بگین از اون تیپ آدم‌ها هستین که ساعت 10 شب تخم می‌گیرین تا خود صبح میخوابین یا نه شب زنده دارین شبو مشکلی با خواب ندارین مثلا از چیزی نمیترسین بعضی از شبو می‌ترسن یا تا تاریکی می‌ترسن اگه شب خوابتون نبره چیکار میکنین اگه شغلی دارین که شیفت شب کار میکنین برامون از تجربه شب بگین این هفته کلا میخوایم ب ما از شباتون بگیم و سلام فرشید عزیز سلام شب باشه شب کار باشی محل کارت هم انبار شیر پاستوریزه تهران داریم یخ می‌ذاریم خوابم میاد بعضی وقت صدایتو هم گوش میکنیم کیف می‌کنیم قربونه شهاب هستم از تهران قربونت برم شهاب جان فقط بج بجاش میدونی چیه اه... کلسیوم خونت میره بالا دیگه همینجوری شیر پاستوریزه فکر کن از شب تا صبح همجوری شیر بخوری خیلی خوبه جای ما هم بخور نوش جو نازنین توی اینستاگرام گفته شب چیه آدم باید هفت اصر بخواه چهار صبح بیدار باش معلومه یعنی قشنگ حکومت نظامی تو خونه نازنین ها معلومه ها معلومه دیگه هفته شب قاموشی بزنی از اون بر چهار صبح بیدار شدن خدا خیلی دیگه ستمه دیگه کل پاچه ای که ندارین که نازنین جا ریاهین گفته که آقا ما شبا تخت تا صبح میخوابیم حجت اسمش آره این اینستاگرام کامنت داده گفت آقا ما شب تا تخت و صبح میخوابیدیم خوب ولی از وقتی زنگ گرفتیم یه خواب راحت نداشتیم مثل جوخت شدیم چاکر پاکر از شیراز من نگرفتم مشکل چیه آقا حجت جان یعنی چی خانومت خر و پف میکنه مثلا تو خواب حرف میزنه تو خواب راه میره جریان چیه من نمیگیرم آقا قضیه رو یه پیغام میذارین تو خماری نذارین کامل داستان رو بگیم برامون والا حالا همه موندن چیه داستان چرا شما نمیخوابید ما خانم ها آقایون دختر خانم ها پسر های شب یلدا اونایی که شب رو با ما خواهید بود احتمالاً حواستون باشه یه سوال ویژه شب یلدام برای شما داریم از طریق تمام راه های ارتباطی موجود ازتون خواستیم که برامون از آینه‌ها و رسم و رسومات شب یلدا در منطقه محل سکونت خودتون بهمون بگین به ما حتما وقتی تماس میگیرین بگین اهل کجایین و بگین شب چله رو با کیا و چه جوری برگزار می‌کنین دوست داریم صدای شما رو از منطقه های مختلف ایران توی ویژه برنامه شب یلدایمون بشنویم که یه شب نشینی به وسعت کل ایران داشته باشیم. یادتون نره برامون از شب چهل هاتون بگین ضمن یه شعری، آهنگی، زمزمه‌ای، داستانی، حکایتی، آوازی هم اگر که تو چندتون داشتین مناسب شب چله بود دیگه بریزین بیرون که شب یلدا استفاده کنیم. شب شب میشه شب که میشه این دل من تو سینه تاپ تاپ میزنه به به همینه همینو میخوام همین خطو شما بگی برو فعوز فردو هم آفری خیلی خیلی این شده <ok> <trying to> <calculator> شبه یلده ماه اگه تو ما میشنم ما میشنم اینه از کجا؟ این چی بود آخه شبه یلده که هنون نشده چرا خالی میبندی؟ شما یه روز زودتر میگیری شب شبه یلده رو؟ الان این چه دعوار؟ صداد دعوار رو تو خونه تو خانواده؟ خب همش میذارم مار تو خماری صداهایی پخش میشه همجی میره عجبا؟ یه فیسبوک نوید گفته من عاشق شب بودم تا قبل از اینکه بیام کشور فنلاند اونم شهر نمیدونم چی چی آها این یا اولوه آقا ما اینجا همیشه شبیم یعنی ساعت سه که میشه شب میشه و زمین نمیدونم که اینجا هم خیلی سرده دیگه به هر حال عشق یک از خاصیتاش همینه دیگه تا نرسیدی عاشقی وقتی میرسی فارقی مثلا می‌خواسی بری خارج دیگه می‌خواسی بری فنلاند رسیدی قبلش عاشق بودی دیگه الان فارغ شدی مابارت توی فیسبوک گفته که به حاجی عشقم بگو من شبا صبح از عشقش بیدارم خب دوسته عزیز من افضل نفهمیدم که شما از اسمت منلومش خانم هستید یه آقا ولی برحال موازف باشید این حاجی ما خیلی بی جنبه است یه کلی گفتم موازف باشید دیگه باش. میشناسید دیگه حاجیه دیگه راستی چون دوستا همین تيزر یالا رو گوش میدادن ما حتما برنامه شما رو گوش خواهیم کرد ولی بله؟ میگم با اون صدا شیکت حرف زدی یا اون صدای که اخوام داره مخملیه صدا جدیه که وقتی مطالعهش خیلی جدی و غمناک و بگی با هم حرف میزنیم فکر کنم برنامه قرار برنامه خیلی جدی باشه ای ناغولاه نه جدی کجا بوده جدی کجا بوده حالا یه وقتای به هر حال همیشه همه شب ها چه امشب چه فردا شب چه پس فردا شب چه همه شب ها برحال بخش جدی داره دیگه حال حالا ولی نه جدیتی ما نداریم خیلی ما جدیتی نداریم من الان جدیم من الان جدیم الان ولی جدیم این مقدار صدا جدیتر لطفاً <تص> با پس فرده ات ایمیل ماست به ما ایمیل بزنید دو صف چهارصد بیست شش و سهصد و هفتصد و یک دو صف چهارصد بیست و سی و بهمون نسیم بزنید در فیس گوگل پلاس ساند کلاد اینستاگرام میتونم رو فالو کنید برمون کامنت بذارید لطفاً اپلیکیشن رادیو پاس فردارو آیو اسیاش دانلود بفرمایید و از اونجا صداتون رو به ما برسونید صدای ما رو از اونجا میتونید دانلود کنید و بشنید تلفن های پیامگیر ما که صدا شما رو ضبط خواهند کرد دو و سه و که از داخل ایران تماس میگیرند دو همین با خیاله تو چشم من خواب نمیره برق اون دیگه از یاد نمیره بذارم شب بزرم شب بخوابم خواب بزرم شب به خواب بخواب بخواب بخواب بابا بخواب بخواب شب به بخوا اما یکی از حساس ترین و استراتژیک ترین شبهای زندگی چه شبیه؟ ای گفتین ای گفتین گفتی؟ شب ازدواجه دیگه سامی چه خوششونم از سریعه ای ای ای, ای <تصفيق> میکنه اصلا اسم ازدواج میانم جد دلش غیلی بیلی آخه بچه دوست داره دیگه. حالا. حالا آره. یکی از حساس ترین و استراتژیک ترین شبها و شاید هم برای بعضی ها پر استرست در شب و شب, شب ازدواجه این شب به قدری اهمیت داره که گاهی توسط چند دوربین و از چند زاویه جزء به جوز اش فیلم برداری میشه آقا چنان خرج میشه در این شب گاهی که یه وقتی عروس و دومات ببه و خصوص داماد تا سالیان سال نمیتونه اصلا تو زندگی کمرش رو صاف کنه ولی چون شب بی نهایت مهمیه حتی اگه بسته تراول هم تو این شب آتیش بزنی رو داره بله این که چرا شب عروسی اینقدر مهمه چرا اینقدر همه دلواپسن که توی چنین شبی همه چیز پرفکت و بی باشه یه دلیلش برمیگرده به اینکه این دو نفر برحال توی این شب به صورت رسمی و قانونی زندگی مشترک خودشونو دارن شروع میکنن و برای همین خب این شب ارزش سمبولیک و احساسی خاصی داره دیگه یه دلیل مهمتری هم برای اهمیت و اساسیت فوقلاده این شب هست و همونم هم اینه که صد جفت چش بلکه بیشتر از خانواده عروس رو نمیدونم صد جفت چش بلکه بیشتر از خانواده دومات تو این شب آقا زوم کردن روی مجلس؟ اگه خدای نکرده مثلا هر مشکلی پیش بیاد تا سالهای سال ها در مورد جوجه‌ای که کم اومد و برنجی که شفته بود و پزیرایی که بد بود و سالونی که کوچیک بود و صندلی‌هایی که سفت بود و عروس یا دامادی که زشت بود و از این جور قبیل مسائل به حال صحبت خواهند کرد پس هر چقدر قدم پنج پنچ زدایی کنیم از این شب و نگاهمونو باز کنیم و سخت نگیریم بازم می‌بینیم که این شب اصلا آقا هیچ عروس و دامادی با هر درجه‌ای از فریحدگی و فکری. نمیتونن اگرم بخوان تو چنین شبیه آروم و بدون استرس باشن بله بیا ها همینه آخه سامی داره آرزو میکنه ای کاش این آهنگ عرشی خودش بید. ای بابا ای بابا نشد برات زن بگیریم سامی چلو نه تا برنامه بیشتر نمونده تموم شد را یک دو نفر هم اول اومدنی خودشون دادن و رفتن موندی رو دستمون ترشیدی ملش شبایی هست که تمومی نداره یعنی هرچی چی ساعتی تو نگاه میکنی که بگذره هیچی به هیچی بلندترین شب سال همینه نگلدا گفتم یالدا دوستم یالدا افتادم پنج به صبح زنگ زد بود که شب میای بریم بیرون گفتم کجا گفت هر جا گفتم برای شام گفت برای هرچی گفتم خب یعنی چند تا چند گفت یعنی از ساعت پنج که عروسی شروع میشه تا نیمه های شب که من رسیدم خونه به هیچ فکر نکنم سرمو بذارم رو بالش برم گفتم عروسی کی تو که به هم زده بودی با دوست پسرت نکنه یهوئی عروس داری میشی نگفته بودی ناغلا گفت من عروس نمیشم ولی اون دوماد میشه و پقی زد زیر گریه گویا همین دوست پسری که یلدا باش به هم زده بوده داشت با یکی دیگه ازدواج میکرد زندگی دیگه شب داره روز داره شبای حساس داره شبای طولانی داره پایان شب سیه سپیده دست داره والا ری غریب سلام برو بریم چه خبر ها؟ سلام به همگی فرشید جان از وضعیت جسمانی منصور پورهیدری پدر استقلال شروع کنم که این روزا تو بیمارستان بستریه فرشید خیلی جالبه حدود نیم قرن منصور خان در همه رده ها واسه اون تاج سابق و استقلال فعلی نقش موثر داشته تو این چند سال اخیرم به عنوان سرپرست آبیار و چت حضور داشته همیشه جالبه از او تخت بیمارستان به دفتر باشگاه پیرام داده که وسهش بلیط هواپیمای تبریز رو بگیرن که فردا همراه آبی ها بره تبریز تو مسابقه سهشنبه با تراکتور تو جامع هستی اونجا باشه. عجب شاید حالا بعد نباشه اینه که گفتی بعضی از جوون ها که با نیشه پشه بستری میکنن خودشون رو یاد بگیرن از ایشون در صورت حاله. ما هم برای منصورخان منصورخان آبی آرزوی سلامتی می دیگه چه خبر فری فرشید حالا که از آبیا گفتیم از استقلال خوزستانم بگم تیم بیه و کمحزینه با خلق شگفتی که احرمان شد به این صدایی دو از حوادارای این تیم گوش بدیم از وردشگاه نخش جهان اسفان در مصاحبه با سیما که بعد از برد زوباهن اینجوری خوشخالیشونو ابراز کردن دشنبیم هیچده بازی کن بومیان. تعصب بازی میکنند با خدا همشون تعصب دارن فکر فول همش نیستن فکر قهرمان برای ان میگیرند انشالله مربی تیم ملی آیه که یه نگاه هم به این تیم داشته باشه چند نفر چون مستحق تیم ملی هستن باید انتخاب بشن چون حقشونه <تصفح> مبارک استقلالی های خوزستان باشه فکر کنم حقشونه بعد از مدت حالا یه جامم خوزستان بگیره چرا که نه؟ آره واقعا فرشید حرف خشنگ خوبی زدی واسه اون جنوبی حقشونه با سرمربی جوونشون استقلال خوزستان عبدالله ویسی که به پپ گواردیولای ایران مشهوره حسی جان امروز یه افتخار با ارزش هم نصیب داوری فوتبال ایران شد علیرضا فغانی فینال جام های جهان رو در ژاپن سوت زد بین بارسلونا و ریورپلاته که بارسا 3-2 همه برعکس قدر قدرت هم بودن مسی نیمار سواره، اینیستا فغانی هم به خوبی از وظیفه قضاوت بر اومد مبارک آقای فغانی و دو کمکاش باشه امیدواریم که حالا مربی تیم بازنده باخت تیمشو گردن داور نندازه فقط. ای باجی یکی زدی به های داخلی خیلی تکنیکی و ظریف بودم ما ما کلا ظریف کاریم دیگه فریبوجان از شما یاد گرفتیم استادمون شما بودی آقا چاکریم تا فردا شب یلدا که دوره هم کنیم دیگه بریم تا فردا شب یلدا خدا نگهدارت هورمونت خدا با سلام بیستویکوسی یک شمب شب را زمین از امضا شدن طرح محدودیت های ویزایی در کشور آمریکا برای ایرانیان با مروبی بر مهمترین عناوین خبری که ساعت گذشته آغاز می فرود خرود یک هواپیمای شرکت ایر فرانس با 450 مسافر به دلیل پیدا شدن یک بسته مشکوک به بمب در دستشوی این هواپیما و سؤال ناظران که چجوری ما میخوایم سوار حراف ماشی اینا تا چروی که کف پامونم میگردن بعد تلوریست همجوری فرت و فرت بمرد میکنن از اینا تکزیب <تصفح> نامزدی مجتبا خامنه ای در انتخابات خبرگان رهبری و نظر کارشناسان که با ایشون چند ساله داره گرم میکنه ولی رهبری دیگه خبرگان واسه شوخی پوخیه و کسب رتبه سومین زندامن بزرگ روزنامه نگاران در جهان توسط کشورمان و امیدواری فعالان عرصه زندامن کشور به این که با گرفتن همین چند تا روزنامه نگار باقی مونده سال دیگه اول میشین مهمترین صدخط های خبری گذشته را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با چه چهی همکارم بلبل. سانه بنابرای گذارش های رستیده الله جنتی و الله یزدی برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند. این در است که پس از انتشار این خبر امیدواری های ایجاد شده برای بازنشسته شدن این محازن نظام از به این رفت. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه الله جنتی در حال حاضر 89 سال دارند و دوره آینده مجلس خبرگان هم تا سن 98 سالگی ایشان به طول خواهد انجامید بهتر است یک واحد اورژانس و بیمارستان متحرک در محل مجلس خبرگان مستقر باشد تا در صورت پیش آمدن هر مشکلی برای ایشان به خیلی سریع وارد عمل شده این ذخیره انقلاب اسلامی را همچنان برای آیندگان حفظ نمایند پایان مشروع اخبار ای بله ما تشکل از توجه شما تا شبی دیگر برنامه دیگر و بلبلی دیگر خدا هم نگهدار. تموم شد با اومد او بول بول چی شده میخوای بری اتاق عمل چرا ای دو... نه این میکروفون هلا میخوام برم بیرون الان دکتر میاد میگم با چرا ماسک زدیم این شیمیایی زدنی ای چرا ای با نه ای دو... آقای این هوایی که هلا ما داریم دستکم یه شیمیایی نداره ای باقای با سسول بازیت چیه بول بولی نه همش دکونه و الان همین ماسک رو تو رفتی چن خریدی بگو آقا چن خریدی ما فایدمه میکروفون طلا دکتر از آزمایشگاهش میگه اینا رو همین دیگه ببین حالا تو دکتری تو آزمایشگاه کار میکنه از اینا از آزمایشگاه می ولی کلا ببین یالو آدام میره چند تون از این ماسکا وارد میکنه بعد میره آدم این هواشناسیه اینا رو میبینه و علتم که جوگیر همه میدنم هم اینجوری گل رو گل میخندن و این میکروفون طلا ها و کشیفه و این حرفا چیه ما کشیفه بذم من برم این پنجره رو باز کنم دو تا نفس عمیق بکشم بیا ببین ها بح بح چه هوایی نپنین آقایی می کنون داره این کارو بده براتون بله بابا <تصفيق> بح بح بح بح <تصفيق> مردم این چی بودی افتو حلقا من مزه هشده کش می داد با <تصفيق> دیدین آقایی که خود حالا با شما هر رو افتبانین من برم نوتر اومد شب خوب <تصفيق> بابا بول بول یه دونه از اون ماسکت کمک اخ کمک من معناتون می‌خواستم ببینم شبایی که نمیخواد به رادیو پس فردا شباتون می‌خواد چطوری سفری کنن ببینم شبایی که نمیخوام بیام پس فردا امم خیلی سختتاله مسئله واقعیت فکر نکرده بودم یعنی میدونی حتی روزایی که تعطیلیم مثلا اون دو سه روزی که برنامه زنده نیستم من خودم رو اوتوپایلوتم یعنی مثلا چی تا تو هفت نیم کلا توی فضای پس فردام نمیدونم اینم هم حرفی یا باید فکر کنم بهش واقعا پرشید خدا هزت نگذره چی شد؟ میرم بیمارستان بخوابم اه. حرکت کنم برم دعا کن برمونه شبانه نمیتونم بدون تو بخوابم ببین بیمارستان نه فایده نداره این علاکی پول دور ریختنه من چند نفر قبلا هم این کارو کردن شبا قبل خواب یه مقدار این ایدیت پیاف گوش کن افاق نکد بگوی نسخه دیگه برای بنالستان این خاننده قدیمی فرانسوی گوش کن ببین نان رید رید امیلاه سامی بودن دیگه. شما خیلی غیر, غیر زیاد از فکر میکنین سامی. غیر, غیر خیلی دوست دارم. غیر غیر غیر غیر <تصفيق> <تصفيق> دوست دارن یا اشکال غیر ولی قشنگه غیر غیر قشنگه غیر غیر غیر خانم غیر غیر غیر غیر غیر غیر غیر آه. آقا آقا یکی از راحت ترین کارهایی که مردم میتونن تو مملکت ما انجام بدن مردنه بله دروشن مردن یعنی شما یه دونه نون بخوای بخری شاید از اراده کردن برای مردن الان آسان تر باشه دیگه ماشاءالله انقدر تصادف و مرگ در اثر دیگه جدیدا آلودگی هوا و حوادث طبیعی و غیر طبیعی و اینا داریم که آدم فقط بعدم لب تَر کنه همینج مرگ خودش میاد الان مثلا مقام مسئول مملکت اومده داره در مورد کشته شدگان با تیزی یا همون چاقوی خودمون این آمار جالبون میده گوش کنی حدود 700 تا ما از اول سال کشته با صلاح سرد داشتیم در روز بین دو تا سه نفر کشته به لحاظ سلاح سرد داریم بله یعنی فقط در سال 700 نفر به خاطر چاقو کشی میمیرن تو مملکتی که به خاطر تعالیم خیلی عمیق و عرفانی که مسئولین دارن و روحیات انقلابی که وجود داره قرار بوده مردم همه خواهر برادر باشن از سفتو هم قربون صدقه هم برن بلاخره دیگه هر نظامی یه دستاوردی داره. نظام مقدس ما هم به حال با سالی 700 کشته راه تیزی همین چه دستاورده داره واس خودش. آیا برای ندیدن ریخت با جناق رو اعصابتون حاضرای در کاری بکنه؟ آیا نمی‌دونید چجوری حد دستبسر رو بر روی تو کتاب داشتم دارم با شوهرش بزن بزن می‌کنن راحت بشی؟ آیا میخواین برای خلاص شدن از دست آدم روی مخ دروبرتون راهی مناسب و چمخرس پیدا کنین؟ تیزندیشان چاره کار شماست ما به شما یاد میدیم که چطور با یک چاقوی ارزان قیمت مشکلاتتون با دیگران رو حل کنید کارشناسان تیزندیشان با سابقه ساله ها خون و خونریزی و حبس در خدمت شما تا بهترین و ساده روشهای حل مشکلات با دیگران را به شما بیاموزن تعداد تیزی خورده های کشور کارنامه ماست در تیزندیشان با تیزندیشان تیزی مشکلات رو به سمت دیگران بچن خونید تیزندیشان جان من 10 15 سال پیش که همچین دنیا رو یه محیط ایدالتری میدیدم عاشق شده بودم بعد دانشجو بودم کار بارم نداشتم و اینا بعد دیگه برای اینکه برام برم خاستگاری مجبور بودم برم آژانس شیفت شب کار کنم گفتم که حالا اینم بگم برای شما تجربه شبونه ما بله خیلی متشکرم اینم هستی که خیلی الان کار دوم سومشون میرن آژانس کار میکنن یا به عنوان تاکسی تاکسی که نه اما منظور سواری تاکسی دربستی و اینا میزنند شما هم به حال این کاری کردید خیلی ممنونم از تجربه آشقیت دوران دانشجویتون برمو گفتید اما اما یکی دیگه از شبهای مهم و حساس البته فقط برای آقایون شب اول خدمت سهربازیه عطی خیلی شبای دیگه میتونه شبای حساسی باشه ولی شب اولی شبه دیگه است یعنی اولین شب جدایی از ددی و مامی یه شاید هم حالا جدایی از بابو ننه فرق نمیکنه چون دیگه پاد پادگان با هر چیزی که قبلا تجربه کردین زمین تا فرق میکنه در نظام یک قانون نانوشته ای هست که میگه برای اینکه سربازی رو بخوای بری و برای اینکه یک نفر بخواد مثلا یک سرباز چهجوری میگن ساخته شده ای بشه و اینا باید اول اون بچه سوسول اولیه هر رو مثل خونه کلنگی بزنی بتکنی بتره کنی بریزی پایین بعد از اول شروع کنی به سرباز ساختن برای همین روزای اول خدمت سربازی معمولا سربازهای ارشدتر و فرمانده ها همجوری مشغول ترکوندن سربازهای تازه وارد یا بقول خودشون آشخرو هستن و بخش اعظم عملیات تخریب هم تو همون شب اول خدمت سربازی انجام میشه شب اول پادگان دیگه هر اتفاقی ممکنه برای یک سرباز صفر بیفته ممکنه وقتی مثلا خوابت برده یهو یکی تو مایه های رمبو از در آسایشگاه بیاد تو با این مسلسل بغل گوشت شروع کنم مثلا به شلیک منتها با تیر مشکی یا چه میدونم ممکنه تا چشاد گرم شده ببینید چهار تا گلاه اومدن یه پتو انداختن رو تا سرحد روغن چشی مثلا کتکت زدن مشتمالت دادن ممکن است سه صبح بیدارت کنم بگم بعد تو بیای الان کل توالت های پادگانه همین الان و تمیز کنی خلاصه که هر چیز دوشب اول خدمت ممکنه اتفاق بیفته و همین این شب رو بسیار شب مهم و سرنوشت سازی میکنه دیگه بالاخره یا طرف دیوونه میشه یا اینکه کلن یا آدم دیگه میشه دیگه شب از این سرنوشت سازتر هم مگه داریم مگه نداریم دیگه الان اونهایی که میخوام برن سروازی الان سکی دهر رو زدن <تصفيق> نگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشند. امران ملکوتی سلام سلام باشین سلام همگی چه خبر ها؟ بولد دو شطیش آکادمی هنری آمریکا که همون اسکار خودمون لیست نهایی فیلمای نامزد دریافت جایزه رو منتشر کرد که فیلم نماینده ایران یعنی محمد رسول الله مجید مجیدی توش نبود علی جنتی فازید فرهنگ شده اسلامی امروز به این ماجرا عکس نشون داده گفته باید بررسی کنیم ببینیم چرا این کار کردن اصلا احتمالاً مسئله <تصفح> سیاسی مذهبی پشت این ماجرا بوده هجا. اما از نظر غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم تو نماینده رش از همه با امضاتر چی گفته حتماً چمقدری فیلمو بعد می‌برد و تحویل می‌داده به خاطر ارتباطات خاصی نه. که داشت. چرا بعد اینو نه اینو نگفته اما علت انتخاب نشدن فیلم به خاطر این عنوان کرده گفته چون می‌دونن سان فیلم تمام جایزه ها رو می‌بره بقیه فیلم اصلا قدرت زورآزمایی با فیلمو نداشتن گفتن اصلا شرکتش نمی‌دیم. یه <تصفيق> اینجوری حالا اینشالله قسمت ها بعدیشو که باز میفرستن جایزه بگیره اونا میره جایزه میگیره حالا دیگه دو قسمت دیگهش مونده هستین هنوز آره اینشالله اون میره همه جایزه ها رو درو میکنه از موسیقی چه خبره؟ <تصفيق> بعضی بود سومین بمون آلبوم صدای تهران با اجرای زندگی مرتضی احمدی که سال پیش از دستش دادیم در همین شبایی وی منتشر شده تو این آلبوم به رنگ بقای که نwave مرتضی خان احمدی نوازنده تار علی رحیمی ام با تنبک خلاصه همراهیش میکنه بسیار ممنونم ازت کامران عزیز باد خدافظی میکنیم تا فردا شب که قرار شب یلدا رو با هم باشیم و کلی اشقا کنیم بریم این صدای مرتزا احمدی از آلبوم صدای تهرون رو بشنویم به کاری هست به اسم چگون در پخته با تو هم خدافزی میکنیم کامران عزیز تا فرد, تا فرد شد. شبه جمعه است و یار از من چگون در پخته میخواهد شب جمعه است و یار از من چگون در پخته میخواهد پدر سوخته گمونش جنگ قارون زیر سردارم من از اقرم نمی ترسَم ولی از سوست نمی دو نـتنه بیمرو باد از کس دیوال میآید اشطور اشطور اشطور که جوان قد بلندی است که جوان قد بلندی است کَلش به مثال کل کَلقند است چفتگ زدنش رو اش بیکاری است چفتگ زدنش رو اش بیکاری است عروس اهتاج سوار گاری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 از ده ساله دارم شبکاری میکنم تو یکی از محلاتی که پر از فسخ و فجور تا صبح با هزار و یک مست و پاتیل و چپ و چولو دربوداغون درگیریم این ای که معروفیت جهانی داره یه تیم دست دو فوتبال هم داره تو شمال آلمان بله خیلی ممنونم مچاکرم. کجاست نفهمیدم دقیقا جاشو نگفت انقدر فسخ و فجور انجام میشه بعد از فری بورز بپرسیم کجاست ببینید نگاه کنید شب به این قشنگی شب به این ماهی که موضوع ما هم هست شب به این آرومی و شیکی ببین چه فاجعه ای باید اتفاق بیفته تا یه همچین شبی رو تبدیل به شب قیامت بکنه چیه؟ امتحان وای وای وای وای امتحان به قول شا شاعر که میگه من نمیتونم چرا امروز صدام گرفته ببخشید به قول شاعر که میگه آنچه یک شب را کند بی انسجام امتحان است امتحان است امتحان بله به خصوص که شما از دسته شب امتحانی ها باشین وای وای وای دیگه شب تبدیل به فاجعه میشه لام سب یعنی تو این شب بیخوابی اتفاق میفته نداشتن حوصله برای درس خوندن و حوصله برای هر کار دیگه ای اینم اتفاق میفته اصلا حواس آدم در چون این شب تیروتاری به همه جا میره بجز اون چیزی که باید ب الان بر بچه شب امتحانی میدونن یعنی شما چه بساعت تو تو شب امتحان برید به کارهایی فکر کنید که شاید پونزده سال پیش کردید هیچ بعید نیست هیچ وقت هم این کارا یادتون نمیادا هیچ وقت همه تو شب امتحان همه اینا یادتون میاد خدا صبرتون بده واقعا حالا همونا رو زب در ست کن میشه شب کنکور آخ, آخ آخ آخ آخ با این تفاوت که تو شب کنکور شما استرس اینو داری که فردا با سیاه کردن اون مستطیلای سفید پاسخنامه نه تنها سرنوشت تحصیلی و حتی شغلیتونو مشخص میکنین بلکه کل خونواده و کل فامیله با نتیجه کنکور شما سازماندهی و آرایششون امکان داره کلن عوض بشه مثلا فکر کنید فردا تو مثلا کنکور شما رو فرم آماده باشید به خوبی سوال رو جوابگه رشته توپ تو دانشگاه قفا هم قبول بشید و همه بهتون افتخار میکنن مادرتون میره میشه در صد مجاس پزیدهی پدرتون میشه پدر نمونه میشید الگویه برادر خواهرتون هستند اما بر عکس شا اتفاققی افته چی؟ خراب کنید کنکور رو بره همه اینا بر عکس میشه دیگه میدونید دیگه آیا همه این فشارها برای اینکه جوون بهتررک از فرت استرس کافی نیست هستگه؟ هستی؟ بله خانم و آقایون دختر خانم و پسر را همجور که میگفتیم شبه های حساس زندگی ما زیادن مثلا یکی از این شب‌ها چیه سامی چرای بالبال میزنی تو کی جدی میگی ای بابا بله دوستان الان سامی داره به می من میگه که آقا بیابانی یاتونه که آقا بیابانی اومده رو خط تلفنی ما میدونیدیشون هم حساب محساب ندارن خیلی نمیشه پشت خط معطلشون کرد سامی جان وصلش کن وصله اوکی الو الو آقا بیابانی الو آقا بیابانی الو الو سلام خوبی یاد ما کردی واه توست خودت اینجا حساس صداس میکنه و بیابانی جان حساس خالی نبود که این شب های حساس موضوم رو راع بشه. حساساسات تو شب و روز نرکه اساسات مال اوناس که روشون حساس حالا اونخوااص روز باشه مخاد شد نه حالا شما خون خود کثیف نکن بیا یکیم از حالا که هستی اومدی از شبهای حساس زندگی برای ما. واسه لطدی وقتی پای مرام و مرفت بیاد بد همه چ کس همه چه ازادنده؟ حالا میخواد عروسی باشه میخواد ازا آخه کدوم لوتیشه و عروسیشو میتونه بدون ایتا تا سب بال بال بزنه سب کنه آخه بگه علکیه همین جوش علف باز. داری زم میگیری داری گلی رو بر میاری تو زندگی این مسئولیته بله بله مرد ساخته نشده واسه مسئولیت مردی که گلی آورد تو زندگیش مردی که مسئولیت گرفت دیگه مرد نیست دیگه لوطینه ب... بپره پرنده بولش که دستت که نمیتونه بپره ب... ببخشید من دیگه... نفهمیدم فقط گلی کیه آقا بیا بگی گلی تو دلته گلی تو قلبت ب... است هر آدمی واسه خودشه گلی داره کار ما اینه که گلی زندگیمون مسببات کنه بله گلی که اومد همت جاسوس میشه مسئولیت گلی کمر مرد و خرم میکنه بعد تو میجساسه شب گلی بیا تو زندگی مردی دیگه اول اون شب دیگه صبح نمیشه من با تو اون شب غر گلی رو با جون دل بخره گلی آره گلی کجای گلی گلی گلی آخه گلی, آفر... کی... گلی. گلی گلی اه گلی گلی الو آقا بیابانی اقا. چی شد ای دوباره قطع کردی گلی کی بود گلی چی شد چه دل خونی داشتین آقا بیابانی ای بابا میگن دیگه این شبهای حساس زندگی به بعضی خیلی فشار میاره اینه ظاهرن آقا بیابانی هم زیر همین فشاره بوده ایشالا درست میشه دیگه سامی جان یه آهنگ گلیدار بذار برای آقا بیابانی اگه الان شنونده شاید یکم حالش بهتر بشه برو بریم آره دمت کم گلی گلی دلبری گلی دلبری تو چه شهری قلبم قلبم قلبم تو چه مرهم زخمو دل دمی دل دمی دل دمی نرو از بر من تا دورته دورته دورته تو که سرخی رنگ زنده‌م واسه من پسر احمد خوشبش بسو نه فرابونی دریا بشه نما تو خونه ی دل را بده بس دل رو به قلبم بو بشه بس دل رو به قلبم بو بشی خوشگلی، گلی, گلی اللبی گلی از همه زیباتری گلی باسه من گلی باسهش گلی از همه م رووتری گلی شکلی گلی, گلی اللبی گلی از همه زیباتری گلی باسه من گلی باسهش گلی از همه م رووتری خجان سلام میخواستم ببینم سه ساعت برنامه شبیه الدار آیا تلگرام می‌ذارین چون متاسفانه iOS آی فقط یک ساعت اولش رو میشه دسترسی داشت ممنون میشم راهنمایی کنی به هر حال عاشق تیمو خراب خودت و برنامت برونه. من به خدا مخلصتم نگو اینطوری آقا خیلی چاکریم به خود آقا می‌ذاریم دیگه همه جا می‌ذاریم مگه ما غیر از اینه ما همه برنامه‌مون رو همه جا می‌ذاریم بعد دانلود پیلگرام هم میذاریم حالا این سه ساعت نشد تیکه تیکش میکنیم میذاریم آه سه تیکه میذاریم نمیدونم میذاریم حتما خیالتون تخت خیالتون تخت <تصفيق> اما بالاخره دیروز این طرح پرسر و صدای محدودیت ویزای اه... محدودیت ویزای آمریکا برای مردم چند کشور از جمعه کشور شهید پرور خودمون ایران که هفته پیشم راجع بهش صحبت کرده بودیم بالاخره این طرحه قانون شد یعنی توسط اوباما هم امضا شده به قانون تبدیل شد بالاخره ما نفهمیدیم چی شد که وقتی یه سری مثلا تبعی عربستان و پاکستان و چند تا از عرب آفریقایی رو اصل فرانسوی رفتن مثلا تو پاریس و تو کالیفرنیا کارای تروریستی و جنایتکاری جنایتکارانه کردن عزیزان مسئول در آمریکا اومدن یه ایران رو گرفتن و یه رو کردن که الان اگه شما مثلا چم چه میدونم ساله داری تو آلمان زندگی میکنی، پاسپورت آلمانی داری، تو این چهل سال حتی یک بار هم به ایران نرفتی، اصلا کسی رو هم تو ایران نداری چون محل تولدت ایرانه، بله رفتن به آمریکا دیگه نمیتونی مثل دیگر دارندگان پاسپورت آلمانی بدون ویزا بری آمریکا، باید چیکار کنی؟ بری سفارت آمریکا سرت کج کنی ببخشیدا، من یک شهروند از نظر شما درجه دو اروپایی هستم، لطفا این صلاح میدونین به جایتون بر یه ویزا به من بدین، من میخوام برم آمریکا میدونم ببینم. دیگه دنیا این روزای ماست دیگه کاریش نمیشه کرد هفته پیشم البته گفتم که به قول شاعر گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری دست گلشونم درد نکنه ولی خب به عنوان یه ایرانی خدمت آقایون و قایون آمریکایی قانون گذار و قاای و رئیس جمهور باید بگیم که اصلا حس خوبی به مردم ایران نمیده این قانون همطوری که خب ما اینجا توی رادیو پسوردم صبح تا شب شب تا صبح میزنم تو سری مسئول کشور خودمون که بابا جون همه مردم کشور شما با هم برابرن نباید شهررمد درجه کو دو بسازید الان اینجوری که کارشنناسا پیش مییم میکنن این باید نیست پسور کشور اروپایی هم دست به اقدام متقابل بزنن بعد دیگه ایرانی های آمریکا هم برای اروپا آمدن درگیر ویزا گرفتن بشن. ببخشید ببخشیده ما درک میکنیم خب میدونیم انتخابات در پیشه آدم به عنوان سیاست مدار باید نگران رعی های خودش و حزبش باشه ولی آخه یه رب معمولی رو تا این حد روبه تلفظ کردن دیگه نوبره والا دیگه البته خبر اومده آقای کری وزیر خارجه آمریکا نامه نوشتن با آقای ظریف و گفتن که ما اختیار این رو داریم که تو لیست کشورهای مشمول قانون استثناء قائل بشیم ولی خب چیزی که الان دست بنقده اینایی بود که الان براتون گفتیم چی بگم دیگه صلاح مملکت خیش خسروان دانند با گلده با گلده روز نامه روز نامه روز امروز پیش. روزنامه آرمان امروز به نقل از حسن خمینی بعد از سبتنام در انتخابات مجلس خبرگان دیروز تیت زده بود که از آبرویم گذشتم ایداد بیداد، میال چه خبره توی مجلس خبرگان؟ یه جوری میگه از آبرویم گذشتم میگم مثلا برای شرکت تو مسابقه مثلا پلی بوی چیزی ثبت نام کرده. <تصفيق> روزنامه ابرار به نقل از سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران باز هم دیروز تیتر زده بود که کسی که عکس تلگرامش پای فلان برج آمریکاست میخواهد نماینده ملت شود. خب عزیز من که خیلی طبیعیه ایشون نماینده ملت باشه میگین نه؟ از ملت نظرسنجی کنیم ببینین چند درصدشون آرزوشونه برن پای فلان برج آمریکا عکس بگیرن ها؟ و روزنامه رسالت به نقل از آیت الله نوری حمدانی خطاب به حکام سعودی امروز تیتر زده بود که امور حج را به ما واگذار کنی تا سالیانه صد میلیون حاجی را مدیریت کنیم عزیزم من شما 70 میلیون مردم خود درست مدیریت کن نمیخواد بریال 100 میلیون حاجی خارجی رو تو عربستان مدیریت کنی والا یه <تص choreography> <تص Griff��LO eraser> <or facial language> شب دیگه و یه با هم بودن دیگه هم تموم شد اصولا کار ما اومدن و رفتن و تموم شدنه و همینه که از ازل تا ابد آدمی زاد یکی از بزرگترین مشکلاتش دلتنگی بوده و هست دلتنگی برای دوست دلتنگی برای یار دلتنگی برای خاک دلتنگی برای اولین بوسه دلتنگی برای آخرین دیدار و بدتر از همه دلتنگی برای خود خودی که از دست دادنش گاهی بدترین دردیه که روح آدم و تباه میکنه شبتون خوش دلتنگی هاتون با سرانجام چمارو قشب اوم دیار رفتی دلم را لار دیار دیورا رفتی شنیدی غوغای طوفان را ز خندان و مام دیورا رفتی ز باقغه سپ بدشت خواب سایه پریست سرروه آزارد بردا دلم را لزان دیار رفتی شما روغ شب خان دی رفت تا تو تشک سرد زمستان را باقا چباران افشان دیار رفتی. یا لا شو شو زباغه شیری پر